مصنوی معنوی مولوی برنامه نوود و نو اشاره اندیشیدن آن ماهی نیمه آقل و خود را مرده کردن گفت ماهی دگر وقت بلا چون ماند از سایه عاقل جدا کوسوی دریا شد و از غم عتیق فوت شد از من چنان نیک و رفیق لیک زانند شما بر خود زنم خیشتن را این زمان مرده کنم پس برارم اشکم خود بر زبر پشت زیرو میروم بر آب بر می روم بر وی که خس رود نه به سباهی که کس رود مرده گردم خیش بسپارم به آب مرگ پیش از مرگ امن است از, از آب مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا این چونین فرمود ما را مصطفی؛ گفت و کلکم من قبل ان یعطی تموت تموتو بالفتن همچنان مرد و شکم بالا فکند آب می بردش نشیب و گه بلند هر یکی از آن قاسدان بس غصه برد که دریغا ماهی بهتر بمارد. شاد می شد او از آن گفته دریغ. پیش رفتین بازیم رستم ز تیغ. پس گرفتش یک سیاد ارجمند پس بر او تف کرد و خاکش فگند. غلط غلتان رفت پنهان اندراب ماند آن احمق همه کرد دراب از چپ و از راست میجستان سلیم تا به جهد خیش برهاند گلیم دام افغانند و اندر دام ماند احمقی او را داران آتش نشاند بر سر آتش به پشت تابه با حماقت گشت او همخابه او همه جوشید از تف سعیر عقل می گفتش علم یعتک نزیر او همی گفت از شکنجه و از بلا همچو جان کافران قالو بلا باز می گفت او که گر این بار من وار همزین زین مهنت گردن شکن من نسازم جز به دریای وطن آب گیری را نسازم من سکن آب به حد جویم و آمن شوم تا ابد در امن و سهت می روام. بیان آنکه که عهد کردن احمق، وقت گرفتاری و ندم، هیچ وفایی ندارد، که ولو ردو و لما نهو انهو، و انهم لکا صبح کازب وفا ندارد، اقل می گفتش هماقت با تو است با هماقت عهد را آید شکست اقل را باشد وفای عهدها تو نداری اقل رو ای خربه ها اقل را یاد آید از پیمان خد پرده نسیان به درانت خرد چون که عقلت نیست نسیان میر توست دشمن و باطل کن تدبیر توست از کمی عقل پروانه خسیس یاد نارد ذاتش و سوز و حسیس چون که پرش سوخت توبه می کند آز و نسیانش بر آتش می زند و درک و حافظی و یاد داشت عقل را باشد که عقل آن را فراشت چونکه که گوهر نیست تابش چون بود. چون مزکر نیست ایابش چون بود. این تمنا هم زبی اقلی اوست که نبیند کان حماقت را چه خوست. آن ندامت از نتیجه رنج بود نه از روشن چون گنج بود. چونکه شد رنج، آن ندامت شد عدم، می ارزد خاک آن توبه و ندم. آن ندم از ظلمت غم بست بار، پس کلام و لیل نهار. چون برفت آن ظلمت غم گشت خش، هم رود از دل و زادش، میکند او توبه و پیر خراد بانگ لا رد لا آدو در بیان آن که وهم قلب عقل است و ستیزه اوست است، بدو ماند و او نیست، و قصه مجاوبات موسی علیه السلام که صاحب عقل بود، با فرعون که صاحب وهم بود. عقل ضد شهوت است ای پهلبان اون که شهوت میتند اقلش مخون وهم خانش آنکه که شهوت را گداست وهم قلب نقد زر عقل هاست به محک پیدا نگردد وهم و عقل. هر دو را سوی محک کن، زود نقل. این محک قرآن و حال انبیا، چون محک مر قلب را گوید بیا. تا ببینی خیش را زاسی من که نه اهل فراز و شیب من، عقل را گر ار سازد دونیم همچو زر باشد در آتش او بسیم. و هم مر فرعون عالم سوز را، عقل مر موسای جان افروز را. رفت موسا بر طریق نیستی. گفت فرعونش، بگو تو کیستی؟ گفت من عقلم، رسول زلجلال حجت اللهم امانم از زلال گفت نه خاموش رها کن های هو نسبت و نام قدیمت را بگو گفت که نسبت مرا از خاکدانش نام اصلم کمترین بندگانش بندزاده آن خداوند وحید زاده از پشت جواری و عبید نسبت اصلم خاک و آب و گل آب و گل را داد یزدان جان و دل مرجع این جسم خاکم هم به خاک. مرجع تو هم به خاک. ای هم ناک. اصل ما و اصل جمله سرکشان هست از خاکی و آن را صد نشان که مدد از خاک می گیرد تنت. از غذای خاک پیچد گردند چون رود جان می شود او باز خاک اندر گور مخوف سهمناک هم تو و هم ما و هم اشباه تو خاک گردند و نماند جاه تو گفت غیر این نصب نامید هست مرتو را آن نام خود اولاتر است بنده فرعون و بنده بندگانش که از او پرورد اول جسم و جانش بنده یاغی طاغی ظلوم زین وطن بگریخته از فعل شوم خونی و غداری و حق ناشناس هم بر این اوصاف خود میکن قیاس در غریبی خار و درویش و خلق که ندانستی سپاس ما و حق گفت هاشا که بود با آن ملیک در خداوندی کسی دیگر شریک واحد اندر مالک او را یار نه، بندگانش را جزو سالار نه، نیست خلقش را دگر کس مالکه، شرکتش دعوا کند جز حالکی نقش او کردست و نقاش من اوست، غیر اگر دعوا کند، او ظالم جوست تو نتانی ابروی من ساختن چون توانی جان من بشناختن بلکه آن غدار و آن تاغی توی که کنی با حق تو دعوی دویی گر بکشتم من عوان را بسه نه برای نفس کشتم نه به لحو من زدم مشتی و ناگاه او فتاد آن که جانش خود نبود جانه بداد من سگی کشتم تو زادگان صد هزاران طفل به جرم و زیان کشتی و خونشان در گرداند تا چه آید بر تو زین خون خوردند؟ کشته ذریت یعقوب را بر امید قتل من مطلوب را کوری تو حق مرا خود برگزید سرنگون شد آنچه چه نفست میپزید گفت اینها را بهل به هیچ شک، این بود حق من و نان و نمک که مرا پیش حشر خاری کنی، روز روشن بر دلم تاری کنی. گفت خاری قیامت سعب تر. گر نداری پاس من در خیر و شر. زخم کیکی را نمی تانی کشید، زخم ماری را تو چون خواهی چشید. ظاهرا کار تو ویران می کنم، لیک خاری را گلستان می کنم. بایان آنکه امارت در ویرانی است و جمعیت در پراگندگی است و درستی در شکستگی است و مراد در بی‌مرادی است و وجود در آدم است آن یکی آمد زمین را میشکافت، شکافت ابله فریاد کرد و بر نتافت کین زمین را از چی ویران می کنی می شکافی و پریشان می کنی گفت ای ابله برو بر من تو عمارت از خرابی بازدان کی شود گلزار و گندمزار این تا نگردد زشت و ویران این زمین کی شود بستان و کشت و برگ و بر تا نگردد نظم او زیر و زبر تا به نشکافی به ریش چخص کی شود نیکو و که گردید نغز تا نشوید خلتهایت از دوا کی رود شورش کجا آید شفا پاره کرده درزی جامه را که زنت آن درزی الامه مرا؟ که چرا این اطلس بگزیده را بردریدی چه کنم بدریده را؟ هر بنای کهنه کابادان کنند، نک که اول کهنه را ویران کنند همچنین نجار و حداد و قصاب، هستشان پیش از امارتها خراب آن حلیله وآن بلیله کوفتن زان تلف گردند معموری تن تا نکوبی گندم اندر آسیا کی شود آراسته زان خانه ما آن تقاضا کرد آن نان و نمک که ز شستت ای سمک گر پند موسی وا از چونین شست بد نامنتهی، بسک خود را کردهی بنده هوا، کرمک را کردهی تو اجده ها، را اجده آوردم، تا به اصلاح آورم من دم بدم، تا دم آن از دم این بشکند مار من آن اژدهها را برکند گر دادی رهیدی از دو مار ورنه از جانت برارد آن دمار گفت الحق سخت استا جادویی که درفگندی به مکر اینجا دویی خلق یک دل را تو کردی دو گروه جادویی رخ نکند در سنگ و کوه گفت هستم غرق پیغام خدا جادوی کی دید با نام خدا غفلت و کفر است مایه جادویی مشعله دین است جان موسوی. من به جادویان چه مانم ای وقی؟ که پر رشک میگردد مسیح. من به جادویان چه مانم ای جنوب؟ که ز جانم نور میگیرد کتب چون تو با پر هوا برمی پری لاجرم بر من گمان آن می بری هر کرا افعال دام و دد بود بر کریمانش گمان بد بود چون تو جزو عالمی هرچند بوی کل را بر وصف خود بینی غوی گر تو برگردی و برگردد سرت خانه را گردنده بیند منظرت ور تو در کشتی روی بر یم روان ساحل یم را همه بینی دوان گر تو باشی تنگ دل از ملهمه تنگ بینی جو دنیا را همه بر تو خوش باشی به با کام دوستان این جهان بنمایدت چون گلستان ای بسا کس رفته تا شام و عراق او ندیده هیچ جز کفر و نفاق وای بسا کس رفته تا هند و هرا او ندیده جز مگر بیع و شرا وای بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر کمین. چون ندارد مدرک جز رنگ و بو، ها ها را گو بجو. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران، از همه عیش و ها و مزه او نبیند جزک قشر خربوزه که بود افتاده بر ره یا هشیش لایق سیران گاوه یا خریش خشک بر میخ طبیعت چون قدید بسته اسباب جانش لایزید فضای خرق اسباب و علل هست ارز الله ای صدر اجال هر زمان مبدل شود چون نقش جان نو نو بیند جهان در آیان گر بود فردوس و انهار بهشت چون فسرده یک صفت شد گشت زشت پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.